خل یعنی سرکه طبیعی چه انگور کری چه سرکه طبیعی سیب درختی سالم شیرین رسیده روش های درمانی طبیعی امروزه در پزشکی جایگاه خودشون رو پیدا کردن اما متاسفانه در داخل و خارج کشور، بعضی‌ها این روش‌های درمانی رو به تمسخر می‌گیرن به خاطر اینکه سطح اطلاعاتشون کمه و یا به خاطر اینکه عادت پیدا کردن فقط به شیمی درمانی و این اشتباه رو باید در داخل و خارج کشور اصلاح کرد چطور هر بیماری ممکنه علل و منشأهای گوناگون داشته باشه درمان های متنوع میتونه داشته باشه یکی از روش های طبیعی استفاده از داروخانه طبیعت که خدا در اختیار ما بذاشته و میتونیم از داروهای طبیعی به نفع بشر با کمترین هزینه استفاده کنیم. حالا یکی از اونها بحث خودمونه که استفاده از سرکه طبیعی سرکه سیب پیش از هر چیز به جبران کمبود مواد غذایی و حفظ عملکرد طبیعی بدن کمک میکنه. به بدین ترتیب می توان از بسیاری از بیماری ها جلوگیری کرد پیشگیری کرد و در درمان تعدادی از بیماری ها هم میتونه یک سبب یه علت ناقصه یا کامله برای درمان باشه حد اقل کمک درمان مفید میتونه باشه یک بار یه نسخه سلامتی میدیم مؤمنان بگیم صبحانه یک لیوان شیر عسل، شیر تازه گاب کمچرد با یه قاشو مربخوری عسل، اصل, اصل طبیعی. بین روسیا اصلانه یک لیوان آب و آشامیدنی ساله که محلول درش شده باشه دو قاشق چای خوری از سرکه طبیعی سیب شب هم بعد از غذا آب سیب شامگاهی دو تا سیب رسیده در همراه یک قاشق مرب بخوری اصد توش هم بزنیم بخوره این داروی تامین سلامتی برای تک تک اعضای خانواده است در جای جای جهان از جمله در کشورهای اسلامی من یک کلمه‌ای که تذکر دادم و حاشیه به این کتاب زدم ادی از مردم در داخل و خارج کشور مؤمنا در تاثیر سرکه سیب و این چند کلمه‌ای که گفتم شک و شبه دارن بعضی‌هاشون هم نه با استفاده درست و بهینه در زمان مناسب مقدار مناسب با دوزج خاص مناسب زیر نظر متخصص تغذیه تو بحثای رژیم های غذایی زیر نظر متخصص و تو بحثای گیاه درمانی زیر نظر متخصص یا های مؤمن با تجربه که هدفشون پیشگیری و یا درمان بیماری هاست حساب فهم بودیم؟ رزیان اثرات مصبتشو دیدم سرکه سیب در زمان ما ماده بسیار با عرضشیه حتی میتونه سرکه طبیعی از جمله سرکه سیب در برابر بیماری هایی که جدیدن پیدا شده باز میتونه نقش آفرینی کنه و تأثیر بسیار مثبتی بگذاره کم کم توضیح میدم مثلا تأثیرات سرکه سیب بر بدن یک مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب ارگانیسم بدن مخصوصا کتاسیام و بخشی از ویتامین ها رو تأمین میکن دو عملکرد ها رو بهبود میبخشه کسانی که ورم کلیه کیست کلیه شن یا سنگ کلیه و بعضی افونت های خاص کلیه لگنچه و حالب دارم محلول آب سرکه طبیعی میتونه نقش آفرینیه به سزایی داشته باشه سوم سرکه سیب و سرکه طبیعی انگور عزگری میتونه جلوه گسترشه باکتری های مزر و عفونی روده ها رو بگیره پس یک مانع طبیعی برای پیشرفت و تکثیر باکتری های مزل می در محیط مرتوب و تاریک روده چهارم بافت های انسان رو از جمله بافت عضله مخصوصا بافت استخوانی رو محکم می برعکس عکس آبلیموتورش منده که سبب شلی عضلات بدن حتی عزله سنوبری شکل قلب می شود سرکه طبیعی از جمله سرکه انگور عسکری و سرکه سیب بافت ها را محکم میکنه و انعطاف پذیری بافت رو میسور میکنه به راحتی انجام میشه نشست و برخواست شخص حرکات و سکنات شخص پنجان خون انسان رو در ها به جریان مندازه چرا؟ چون یک رسوبگیر طبیعیه و یک ضد تسلوب شراینه شیشان به بهبود زخمه و جراحات در روی پوست بدن سرعت می بخشه. چه از باب نوشیدن محلول آب سرکه و چه از باب زماد و پماد محلول آب سرکه به تجزیه و ترکیب اناسر سرعت می بخشه سیستم ایمنی بدن یعنی دیسپاچین کنترل مرکزی رو تقویت میکنه. پس مطلب شیشم چی بود امو به بهبود زخمها و جراحات پوست بدن سرعت می مطلب هفتم چیه؟ به تجزیه و ترکیب عناصر سرعت می بخشیم. بحث های و بحث با های احیایی. هشتوم سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه یا دیسپاچینگ و کنترل مرکزی. سیستم دفاعی بدن رو تقویت کنه. نزیر اصل وقیق شده که قبلا ها بحث کرد. از رسوگزاری املاح در بدن مخصوصا در رگها جلوگیری گیری میشه. در بدن هم که گفتیم در کیسه صفره، در کلیه ها و در مسانه. شاداب کننده و انرژی بخشم هست تونیکه یعنی تراوت و شادابی طبیعی میاره با اینکه کمک میکنه به دفع سموم از بدن از مجاری ادراری و از عرق بدن مجاری رو باز نگه میداره سلامت عمومی بدن رو به دنبال داره روند پیری رو به تأخیر می اندازه بعد خاشیه زدن یعنی پیری فیزیولوژی، یعنی پیری زودرس رخ نمیده، و پیری شناسنامه ای رو به تأخیر می اندازد یعنی سبب افزایش طول عمر با آفیت می شود این هم ما بر این کتاب بحث استفاده و تهیه سرکه در کتب قدیم و عهد عتیق بوده در فرهنگ های مختلف موده حتی از 5000 هزار سال قبل از تولد مسیح هم مدارکی است که بوده مؤمنه حالا اینا به ما نره در ست سال اخیر مؤمنه سرکه در قرن بیستم و ابتدای قرن بیست یکم میلادی در اروپا و آمریکا و کانادا بسیار بهش توجه شده و در جیره قضایی خانوارها رستورانها هست و در کشورهای آسیا و خاورمیانه ایران هند و چین از قرنها پیش سرکی طبیعی استفاده شده و می شود تو کتاباشون هم هست مومنها می مراجعه کنید اینا هم حرشه زنیم شما میتونید ترشیجات متعدد با میوه‌جات و سبزیجات متنوع برای بیماری‌های خاص ترشیجات مختلف با سرکه طبیعی از جمله سرکه سیب درست کنید از باب نمونه یکی سرکه سیب یکی سرکه انگور یکی سرکه با گیاه اقتی آفته دسته دار سرکه که ترشی بندازیم با تمشک شکووف های پرتغال، بنچه های گل روز و گییان طبیعی طبی و معطر و ادویجات مختلف مثلا ۹ ادویه داریم. در ایران بعضی سال هاد در بعضی سال هاد نوع ادوی تولید میشه خب با گونه های مختلف میتونید ترشیجات مختلف درست کنید برای مصارف گوناگون از باب پیشگیری یا از باب درما سرکه رازیانه سرکه ترخون خب مومن یکی از داروهای تقویت احصا چیه و پیشگیری از زرف احصا ترخونه اما ترخونه به تنهایی بخوری آس میگیری باید به زمینه یه دیگه بخوری حالا سرکه ترخون هم میتونی درست کنی درست شد در پیشگیری و در تقویت احصا. سرکه گل میخک کسانی که های اندامی دارن دردهای فکی دارن دردهای دندون دارن خود میخک داروی خودش ضد درده حالت های تخدیری داره مسکن قویه یعنی اگر شما پنششت گل میخک که ریز این میخ قهویف هست اینا رو به جایی آن فکت بیحس میشه از آسانس سان سینا ما اونا با اون یه تزریق یا میتونه معالجه ریشه ای کنه مثلا احساس درد این خدا معمناس سرکه گل میخک میتونی درست کنی یا توزیه گل میخک اما این همه باید زیر نظر پزشک مصرف بشه خود درمانی قلط ها چه گیاهی چه شیمیایی و چه هر درمان دیگه خود درمانی غلطه باید زیر نظر متخصص متعهد باشه یا مثلا سرکه دارچین یکی فرض کن همشی کمروش داره هم قاعدگیاش هاش کنه حالا بخوایی هم حالت یوب سلبت بشه قابض باشه و هم اینکه که قاعده آور باشه میتونه دارچین میتونه زعفران یا سرکه دارچین مثلا یه مختصری روزی یه قاشر دو قاشق چای خوری تو یه لیبان آب بخور نظیر اینکه که چای دارچینی بخوره یا چای زعفرانی بخور چیزهای دیگه مومن از کلم نمیدونم گل کلم نمیدونم هویج، خیار خربوزه و مانند اونها در سالهای اخیر در داخل و خارج کشور تعداد بسیار زیاد و متنوعی از انواع سرکه در قفصهای مغازه در قسمت مواد غذایی دیده میشه. حتی میتونی سرکه بندازی از قارچهای خوراکی که قبلا بحث قاصی مختصر کردیم حتی از بنفشه ها گفتیم که برخی بنفشه با عنوان بنفشه طبی بنفشه وحشی خب میتونید روغن گل بنفشه وحشی یا طبی تو روغن زیتون زیتون خوراکی یا تو روغن بادام شیرین که خوراکی باشه لو علمن ناس ان في البنفسج لو اگر بدونن مردم چه فایده ای در زیت بنفسج هستان لحصه و حصه هراینه جرعه جرعه می نوشم یکی از داروهای قوی زد روماتیسم مفصلیه هم از باب پیشگیری هم از باب درما پزشکی جدید که دارو برای درمان روماتیسم مفصلی مفسدی ندارد حالا میتونه این گل بنفشه وحشی رو میتونه ترشیش رو با سرکه طبیعی سیب درست کنه اگر سرسوزه میده یا یوبوسد ندارد میتونه با روغن بادام شیری یا در پایه روغن زیتون خوراکی درست کنه درست کنه ها؟ چند منظور استفاده میشه هم پیشگیری و درمان اینها هم ضد دردهای مفصلی حتی میتونی از سیب‌های وحشی جنگلی که رسیده هست میتونی شربت ترش درست کنی اینم قابل عرضه شمال ایران خطه شمال یادشت تو کوهای زکروس میتونی از سیبهای وحشی مومنان شربت ترش درست کنی کوهای آند و جای دیگه مومنان کوهای طبوت به تو قسمت هند و مانندو حالا این حالا میشه درست کرد حالا بعضی ها میان شکر رو، گلابو سرکه را هم قاتیش می کنن. از باب اینکه که تعمش یکم تر هر باشه دیگه خیلی زقوم و ترش نباشه در زمستان شربت ترش و سرکه رقیقی که با خردل، گل میخک، گیاه تشنک، نعنا، جعفری، زنجبیل، مختصری فلفل، دارچین و سیر معتر می شد باز می درست کنن سرکه طبیعی مصرفش با دوزج خاص گفتیم دو قاشق چای خوری در لیوان آب یا اینه دو برابر کنیم وسط روز و عصرونه دو تا لیوان آب در هر کدوم هم دو قشق چای خوری سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور ازکری حالا این سرکه افونت رو از بدن انسان پاک میکن نوشیدنش باعث میشه که هضم غذا هم به خوبی انجام بشه دیل مومن فاصله از قضا تم داره هم. حتی مؤمنان ذریب کشتار بعد از جنگ جهانی دوم که بیماری تاون تا بیشتر تلفات گرفت از مردم اروپا تا اصل جنگ دوم جهانی حالا اونجا هم ها اومدن چیکار کردن وقتی که تاون تا در اروپا همه جا رو فرا گرفته بود پزشکان اومدن با سرکه جلوه انتقال بیماری تاون تا رو گرفتن اونها از سرکه به خاطر تأثیر زدعفونی کنندش در درمان بیماری تا استفاده کردن نجام یه حاشیه زدیم و کتاب رسیتون خوندیم سرکه همواره برای هر طبقه اجتماعی استفاده میشه به عنوان یک نوشیدنی ارزان برای فقراء و به عنوان یک محصول پرتجمول برای سربتمندان اینم حرف خوبیه در قرن نوزدهم و بیستم میلادی و الان که تو یک می تاثیر شفا بخش و درمانی سرکه به اثبات رسیده و تا 50 60 سال بعد هم برای رفع تشنگی از سرکه به جای بسیاری از نوشیدنی‌های گران قیمت استفاده شده و استفاده میکنن امروزه مخلوط آب و سرکه هنوز در اروپای شرقی به خصوص در رسته ها یک نوشنرنی خنک و دلپذیر محسوب می شود ما می تونیم تو شهرهای خودمونم رواج می دیم شهر سنا در دار چه اشکال همه جا سرکه طبیعه به جای نوشابای گازدار به جای آب میوای شیمیایی همانند اینا از خراکی ها و نوشادنی میشه استفاده کرد به عنوان یک ریزم مقضیه کامل مثلا اسمارتیز یه مخرب کامل به دندون اینا یک شبه خوراکه اما سرکه طبیعی یک ریزم مقضیه کامل املاح فرامان ویتامینای فرامان سر جاشت توضیح میدونه از آهن و پتاسیم و منیزیم و اینا بگیر مومنها تو انواع ویتامینا یک ریزم مقضیه کامله آنها از جیره غذایی مردم حصف شد یا بعضی هیچی نمیخورن یا بعضی بدخوری میکنن یا پرخوری میکنن هر داشت بده حالا این سرکه طبیعی که از چند چیز درست شده از عیسی آرایش شیمیایی اینها یکیش چیه ترکیب جوهر سرکست یعنی اسید اسیتیک در ترکیب جوهر سرکه خاک اسیدی و اسطات آلیمینیوم است ایست محلول رقیق شدهش برای درمان بعضی از بیماری ها مثل خون مردگی به عنوان پاماد یا زماد محل کوفتگی و خون مردگی پوست میمالیم خون مردگی عبای میره مسطح خوراکی ندارم مسطح خارجی دارم استعمال خارجی سرکه ی سیب زمانی کیفیت خوب داشت زمانی کیفیت خوب خواهد داشت که سیب ها ارگانیک باشه، رسیده باشه، شیرین باشه. قشنگ بشورن، سموم میکروبی، سموم آفات گیاهی و سموم شیمیایی نداشته باشه. سمه چسبن پوستش نداشته باشه. حالا چنین سیبه، سالمه، رسیده شیرین، این به درد سرکه خوردن میخوره و سرکه و سر بدن مفیده. پس این که نیمه نارست یا از درخت بکنم به درد نمیخورد. باید روی درخت رسیده باشه و شیرین باشه. در روش زیستی، دینامیکی، از کودهای مصنوعی و مواد نگهدارنده گیاهی استفاده نمیشود. به این ترتیب رسوبات مزل در محصول باید تا حد امکان به کمترین میزان برسه. سرکه سیب واقعی رو انتخاب کنید از کجا بفهمید سرکه هایی به روش طبیعی که تهیه شده بخرید سرکه سیب طبیعی رنگش رنگ تیرس رنگ شفاف نیست سرکه های تختیر شده با رنگ روشن از مواد غذایی غنی شده و از ارزش غذایی کمتری برخوردارند همینایی که تو قفسه مغازه هست در سنعتیه ارزش غذاییش خیلی کم دقت کنید که روش تهیه زیستی دینامیکی تا حد امکان عاری از مواد آلوده باشه مواد آلاینده قاتیش نباشه سرکه سیب در بازار معمولا تنها به, به شکل سرکه میوه دیدنمیشه مادر سرکه اینم چون تو کتاب آمده یه حاشیه زدم مادر سرکه یعنی چی مادر سرکه مساویسته مادر سرکه وقتی به وجود می آید که باکتری های سرکه الکل اتیلن الکل اتیلن را در سرکه تغییر میدهد حالا حاشیه زدیم و بایستی روی عصاره سیب یا انگور باشد تا بعد از چه روز که سرکه طبیعی به دست آید قبل از چه روز استفاده از آن جایز نیست که مصرف شود چرا؟ چون نجسه و خوردن نجس حرامه پس این کف روش که الان بعضی کتاب ها میگن از جمله این کتاب که مثلا استفاده کنیم مصارف درمانی داره بعضی منافع داره لناس آیه قرآن هم میگه اما هر منفعتی محلله مقصوده نیست ما نظر فقشیه منفعت محلله مقصوده مطلوب و مرادمونه پس هر وقت سرک کاملا سرک شد هم اون وقت مصرف میکنه قبل از اینکه سرکه سرک بشه مصرف نمیکنه حتی اگر بعض خواست فل جمله مقطعی داشته باشه رسول مومن هم بحثون تو مادر سرکه پس لایه کف که هنگام تخمیر سرکه روی سرکه به وجود می آید کپک نیست این ماده که هست اسمش مادر سرکه برای سلامتی مفید و سودمنده روش جمع نکنی دور بریزی اما زودم نخوری در هر وقت سرکه کامل شد قشن سرکه شد بعد خودش پی سرکه است مصرف میکنه. دی حرف ما چی شده ؟ یه قید داره ها. نه اینکه برداری دور بریزی چون کفک نیست. نه اینکه ب فاصله برداری بخوری هنوز چه روز نگذشته. نه باید یقین کنی سرکه شده. به الا نجسه ااضقل ولم از حدس سااقو این جایز نیست باید به حرارت یا به تخمیر که سرکه بشه بعد مصرف کنی این نه این حاشیه. برای تهیه سرکه خوب از جمله سرکه سیب باید کیفیت مواد محصول خوب باشه تهیه سرکه سیب تنها با سیب های رسیده مقربی و سالم ارزش قضایی داره اگر سیبا کوخی باشه آفات گیاهی داشته باشه سموم شیمیایی داشته باشه یا سیبا را نشسته یا خوب نشسته و مانند این ها یا کرمو باشه و کرمک از یعنی حق یا کپک داشته باشه بخاطر اینکه تو انبار بوده یا کال باشه یا سیب ترش باشه نه اینا هیچ کدام ارزش قضایی مورد نظر رو نداره بهترین دما در این که این آب سیبت یا آب انگورت که بخوایی سرکه درست کنید دمای بین 26 تا 28 درجه سانتیگراد این بهترین دما هست زیرا محیط در این دما تخمیرها خیلی راحت صورت میگیره. اگر گرما خیلی زیاد باشه بالای 35 درجه باشه یا بدتر از اون بالای 60 درجه باشه اینجا تخمیر به راحتی صورت نمیگیره بالای 35 درجه اگر بالای 60 درجه باشه حتی مواد طبیعی سیب هم می میره. حتی ارزش غذایی پوست سیب هم می میره. پس بشکهی که مثلا چینیه یا مثلا شیشهیه یا مثلا چوب بلوته که دیروستازی دادن به مدت چهار هفته در همون حالت محیط گرم و تاریک میذاری. ولی درش خیلی کیپ بسته نباشه یه منفضای باری که از این پارچه های نخی و کتانی باشه یه سراخهای ریزی از بالای در پوش زرف باشه تا شکر طبیعی این آثاره سیب یا آثاره انگور تبدیل به الکل بشه بعد از چهار هفته این مایه آماده میشه اگر محیط خیلی گرم باشه در طول یکی دو هفته آماده میشه اما سرکتون خیلی مرغوب نیست گرمای بالای 35 درجه حاشی ازرم میشه گرمای بالای 35 درجه و گرمای بسیار زیاد هم میتواند به تهیه سرکه سیبتون زرر بزن در درمای بالاتر از 60 درجه تو کتاب در در دمای بالاتر از 60 درجه مواد طبیعی موجود در پوست سیب بین میره و سلول های مخمر افزوده شده سلول های مخمر افزوده شده هم می میرند. دو تا خرابی وجود میاد هم مخمرای های مفید می میرند. هم ارزش غذایی در پوست سیب از بمیره از عرضش های قضایی پوست سیب سالم چیه؟ ضد زد نقرسه زده بیماری MSUه یعنی یه حلال طبیعیه که هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه از رسوب اسید اوریک که خون به صورت کریستال در مفاصل و خصوصا زانو و مفصد دوبه میشه پا پیشگیری میکنه و درمان هم میکنه خب وقتی که مخمراش اببین رفت ارزش قضایی پوست سیم هم اببین رفت خب زد نقرست دیگه عمل نمیکنه. درست شد مومنان؟ ها. از اون براشم داریم اگر سرما خیلی زیاد باشه مثلا بیاد شده مثلا پنج درجه به صفر صفر منهای صفر همجبیه پایین چند درجه زیر صفر در سرما هم اصلا عمل تخمیر متوقف میشه رشد باکتریای مفید که تخمیر ایجاد کنه و این مایه نجس رو تبدیل به سرکه حلال طبیعی مفید کنه تخمیر متوقف میشه یک تحقیق علمی یادداشت بفرمایید مامنا یک تحقیق علمی درباره سرکه سیب سرکه انگور عسکری این گونه سرکه های مفید طبیعی مشخص کرده که بیش از 90 بیش از 90 ماده مختلف در سرکه طبیعی وجود داره 13 نوع اسید کاربول، چهار نوع آلدئید، بیست و نوع کتون، هیجده نو مختلف، هش نو اسید سرکه و غیره در سرکه طبیعی انگور عسکری و سیب وجود دارد. سرکی سیب شامل 29 ماده معدنی مهم و اناسور کمیابه مثل اسید اسیتیک که گفتیم جوهر سرکه به زبون خودمون تو طب مکمل و طب گیایی مثل اسید سیتریک مثل اسید لکتیک یک سری انزیم ها آمینو اسید ها و مواد با مثل کربونات پتاسیم. و مثل پکتین درش موجود مواد اصلی موجود مواد اصلی شما نه مواد اصلی موجود در سرکه سیب تو بحث مواد معدنی. تو عناصر کمیاب مثل پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، کلر، سلفورا که گوگرد سلفور، گوگر مس، آهن، سیلیسیان، فلور همه اینا هست در سرکه سیبه هم تو سیبه رسیده شیرین هم هست ویتامین ها ویتامین سه ویتامین ای خب ویتامین سه خودش یه آملیه به مقدار آزی باشه در جذب آهن تاثیر می به جذب آهن کمخونی فقر آنمی فقر آن از سبب شادابی پوست بدنه پوست بدن زود تبدیل به پیری زود رسه پوست نمیشه پوست چین و چروک نمیشه پوست صاف میمونه تر تازه ویتامین سه ویتامین ای یک آنتی اکسیدانه یک ضد سرطانه ویتامین آ نور چشم افزایش پیدا کنه و حتی تو مسائل پایین تنه اونه که ازدواج کردن کم نیاری ویتامین ب یک ویتامین b دو ویتامین B6. رسته ویتامین های ب مایه مفصلیت کم نشه مفصلات صدا نده. مقدمه آرتروس سایدیگه اسفنجی نکه استخونه نشه در خانوما علاوه بر این ها مبتلا نشن به یاستگی زود رست. یا یاستگی که آن شایه شده تو سطح داخل و خارج در سنین سی, سی،, سی و سالگی یاستگی میاد چهار داره در گرانیطررمم سوء تغذیه ازدواج دیرهنگام دختران و زنان اینا علل اصلی ایجاد یا استگی زودرس کانای بیماری شع در سطح جانه حتی داخل کشور. حالا مهمنا این رسته ویتامین های B مخصوصاً B یک پیشگیری میکنه و در درمانه یا استگی زودرس مفیده به تا از کارتی هم میگن. این پایی اصلی برای تولید ویتامین A در هویج زد الجذره. این یک پای اصلی. تو سرکه سیب به هم, هم. درست معمران ها با اسید کلیدلی که معده ترکیب میشه ویتامین A زیاد تولید میشه بفهم ویتامین پ P خب اینجا موجود در مواد فلنوئی که از گیاهان خاص گرفته میشه، مثلا در قرن حاضر مثلا از سویا میگیرن. ولی سویا درش دو تا سم هست. مثل گوجه فرنگی ناراست. مثل موز ناراست، دو تا سم درش هست. هم ایجاد مسمومیت میکنه، هم پوست بدن شبه کهیر میزنه و خارش شدید پیدا میکنه. این سویا درش ویتامین پی هست، ولی به شرط اینکه 20 دقیقه در دمای 50 درجه به بالا بجشونن. دوتا سمش محلول در آب بشه آب بریزن دور دوباره رو آب بکشن حالا قاطع قضا کنن حالا روغنگیری کنن اما چون سخت فسیلی و جوشاندن گرونه این کار نمیکنن نه داخل کشور نه خارج کشور بلکه سایارو دستگاه های پرسی روغنگیری میکنن کنن بعد توفالش که میانن در مغازه میفروشن می مردم به اسم گوشت چرخ کرده فاطیه ماکارونی یا برنجشو میکنم میخورم این کار بشر فعلی به کسی بد نخوره مؤمنم تو تخصصیه سم شناسی واسه شما یک کلمه گفتم اگر بخوای سم سویا از بین بره با تف دادن و با صخ کردن و با دم کردن از بین میره باید سویا رو که اسمش لوبیا روغنیه به زبان فارسی این سویا یعنی لوبیا روغنی رو اینو باید بریزید تو قابلمه زوفتس یا آرام پس جمای 50 درجه سانتیگراد به بالا 20 دقیقه بجوشه تا سمن سایا در آب محلول بشه آبش بریزی دور بعد یه بار دیگه آب بکشی حالا میتونی قاطیه برنج کنی حالا میتونی با دستگاه هیتر برقی یا جلال پنکه یا رو بخاری سریع خوش کنیم آمنا حالا همجور با عنوان میوه خوشبار بخوره بچه یا اینا مثلا روغنگیری کنی و توفالهاش مثلا ماکارونی یا برنج کنی بخوری اشکال نداره ارزش قضایی هم داره این هم یه یادگاری خدمتون گفتم چون این خارجی نمیگن تا این کتاب اینجا هر دیگه حشیه بزن. وجود انواع ویتامین های مورد نیاز بدن انصر مفید پکتین که پایین آورنده کلستروله یعنی پایین آورنده LDL خونته کلستروله بعدته میاره پایین دیگر مواد معدنی و عناصر کمیابی چون آهن مس فلور که به عنوان یک کاتالیزور یعنی یک عامل فعل و انفعال شیمیایی عمل می‌کنند و موادی مثل پتاسیم کلسیم منیزیم فسفورس سلفور که همون گوگرده کلور که قبل از هر چیز برای ساخت و ساز بدن یعنی برای متابولیسم بدن مفیده و لازم و ضروریه حالا یکم از اینجا گفتم اگر می‌خواهید تحقیق بیشتر کنیم وصول اثر به داخلی هاریسان جلد هفت مبحث تغذیه، مبحث املاق مبحث ویتامین ها مبحث اسید های آمینه ضروری و غیر ضروری اینا همه چی همونجا اونجا بحث شده نگاه کنید پوتاسیوم نسبتا قنی که در کره زمین هست یک انسان بالغ تو 24 ساعت نیاز داره به یک الا گرم پوتاسیوم یه مقدارش میتونی از خرما و شیره خرما تامین کنید و و و یکی هم میتونه از سیب درختی سالم شیرین رسیده یا از سرکه طبیعی سالم درست شده که دو قاشق چای خوری در یک لیوان آب استفاده کنه پتاسیم بدن چی بشه اموجا تامین میشه از آنجا که سرکه سیب تامین کننده بسیار مناسب پتاسیم چیزای دیگه هم هست که سرشار از پتاسیم مثل عدس چقدر تو روایتش میدونیم فواید مختلف فقط کسی که بیماری بواسیر داره عدس نخوره تو روایات نعی کرده اما در غیر این شخص یعنی کسی که بیماری همرایی یا بواسیر نداره میتونه از عدس استفاده کنه هم با عنوان این که سنگلی و قصاوت قلبش خوب بشه رققت قلب میاره عشق به جا میاره عشق ریزی بیمورد نمیاره یعنی بیماری دلنازکی نمیاره هم این که خونسازه اصلا خانومی که یا دختری که در سن من تحیزه با رشیده است قاعدگی نامنظم خونریزی های مکرر بله که بینی های زیاد دارد خب میتونه از سویق العدس صبح ناشته استفاده کن سویق العدس که تو روایاتون هست خونساز هست جلوب این خونریزی های بیمورد میگیره حالا مبایسته خودم سرشار از پتاسیم هم هست گاهی تو هفته یکی دوبار عدسی بخورین چشگ دا همون یا پلو عدس دس بخورین در حالی که شلتو که برنجم داره فتاسیوم به بدن تعمیم میشه املاح دیگه تعمیم میشه رشد مو میاره وماننده اینا یکی دیگه معومنا لوبیا تو جیره غذایتون باشه خرش لوبیا درست میکنیم ما اما لوبیا داریم چش بلبارری داریم رشتی داریم سفیده درست است میگن لوبیا رشتی لوبیا چیتی داریم؟ لوبیا قرمز داریم. از این حبوبات در جیره قضاییتون استفاده کنید. سرشار از پتاسیم. نخود رسیده زرد قیده رو ببینیم نخود رسیده زرد آبگوشتی یا شلعی یا سوپی و مانند در چه مومنم استفاده کن. نخود سبزا یادتون باشی که گفتم ما عقیمی میاره من دیدم بعضی ایرانی ها زیاد میخورم این کارو نکنین اشتباهه. کسانی که بالغ عاقل رشیدند ازدواج کردن مخصوصا نباید بخورند شیرخشک نباید بخوریم شیر نجاتی که درش ترکیب شیرخوشک هست نباید بخوریم اینجا عقیمی میاره بارداری رو به تاخیر میندازه جلبک‌های دریایی قهوه مؤمنا با کمترین اکسیژن محلول در آب رشد میکن لذا تو بحث هوا و فضا و سفینه های فضایی مؤمنا حتی شاتل آمریکا بحث ایستگاه فضایی بلوک قرض یا ایستگاه میر مال روسیه اینام تو فضایش معام ها کش میره و از همون ها استفاده میکن چون با کمترین اکسیژن معام ها چکار می؟ اینها رشد میکنن. این خارج از کتاب پس عدس لوبیا نخود رسیده زرد جلبک های دریایی آب خورما کشمش چه به نوع ذبیب چه به نوع مویز چه کشمش انگور سبز مثلا کشمشه های انگور عسکریه کاشمری به معروف چه به نوع مویز کشمش انگور سیاه که بش میگه مویز که هرچی چی سیاه تر باشه انگور یا کشمش سیاه تر باشه درصد منگنزش بیشتره نقش منگنز در بدن اینا دیگه حالا بحثش بمونه تمام اینایی که شمردم حالا به خودم اینها ها از پتاسیم هست پس میتونه اینا تو جیره قضاییتون باشه سرکه طبیعی سیب هم باشه حتی از سرکه سیب جلوگیری میکنه از آهکی شدن جدار داخلی رگها یعنی از سفت شدن جدار داخلی رگها جلوگیری میکنه تسلوب شرائین پیش نمیاد تا زریب شکست رگات بره بالا و خونریزی داخلی زیاد بشه پکتینه که توضیح دادم پکتینه موجود در سیب مدتی است به شکل ژلاتین برای درست کردن آب میوه مربا در دسترس مردم قرار گرفت این که پکتین هم میتواند در رفع کلسترول بالا مؤثر باشه یک موضوع جالبیه که در مقالات علمی جدید نگاشته شده حتی بر اساس دکتر جارویس دکتر جارویس که پایه گذاره درمان با سرکه سیب در اروپای غربیه. ایشون میگه رسوبات احتمالی کلسیم از طریق اسید طبیعی و پتاسیم که در سرکه سیب موجوده دوباره حل خواهد شد به دین ترتیب رکای خونی از رسوبات کلسیم پاک میشه از سنات پکتین در بدن گفتیم پرستر که سیب هست تو سیب هست و بعضی چیزهایی یک از بروز اختلال در گردش خون و آهکی شدن شریان ها تا حد زیادی جلوگیری میکن دوم نسبت به دیگر مواد اثرات پکتین نسبت به دیگر مواد مدت طولانی تری در بدن باقی می‌مونه. به این دلیل که در آب محلوله و مثل مواد فیبری فیبرگیاهی ها فایبر و مثل مواد فیبری مستقیما در خون ترشو نمیشه به گفته دیگر پکتین به عنوان یک ماده قوی مدت طولانی تری رو به خوبی انجام میده در بدن یعنی مندگاری بیشتری داره بحث بیتاکاروتین بیتاکاروتین که گفتیم در جزر هست در سرکه سیب هست تو سیب هست این مانع رادیکال های آزاد خون میشه چون رادیکال های آزاد خون این سبب سرطانی شانونه بافت میشه تکسیر میشه حالا برای جلوگیری و پیشگیری چی؟ از سیب درختی از سرکه سیب استفاده میشه در دوازده بررسی علمی ثابت شده که به تاکاروتین چه در سیب چه در سرکه سیب چه در هویج زرد که حاشیه زنم زردک جزر این ضد رادیکال های آزاد خونه مصرف بیتا کاروتین باعث کم شدن و حتی از بین رفتن رادیکال های آزاد خونه میشه سرطان بافتی پیش نمیاد. انواع تومرهای خشقیم یا بدخیم پیش نمیاد. بیتا کاروتین در سرکه سیب هم وجود داره و مثل یک آنتی اکسیدان یک ضد سرطان عمل میکنه. علاقه بر این بیتاکاروتین در سرکه سیب از بیتاکاروتین موجود در دیگر مواد غذایی راحتتر تر میشه کسی که به طور مرتب از سرکه سیب به مقدار لازم دو قاشق چایخوری در یک لیوان آب استفاده میکنه از آزاد شدن رادیکال های خونش به نحوه چشم گیری جلوگیری میکنه یعنی یک پیشگیری طبیعی از انواع سرطان ها که تا 55 تا من در سی دی داره پزشکی خانواده که دوست ده جلسه است 55 و سرطان اونجا توضیح داد. کلسیومی که موجود بود امینا تو سیب تو خورما و توی سرکه سیب تنها ماده ای که به میزان فراوان در بدن وجود داره و برای استحکام استخوان و دندان ها مفید کلسیوم. اسکلت یک انسان بالغ که انسان بالغ حدود 5 کیلوگرم وزنش 5 کیلوگرم که وزنه استخوناش یک کیلوگرمش کلسیمه. حدود 10 گرم کلسیم در عضلات وجود داره تو گردش خون. لذا گفتیم اگر کلسیم استخونت کم بشه مهندسی معکوس، دیسپاتین، کنترل مرکزی بدن اتوماتیک تو گردش خون میاد از سطح استخونا کلسیوم بر تا کلسیوم خون کم نشه اینجا سطح استخوان پوک میشه توچار بیماری استوپروز یا پوکی استخوان میشه اینا اینها قبلنها گفتن. خواستم اینجا ده بگم که تو روایات شیعه میگه آقا سرکه طبیعی که تو جیره قضایی خانواد و سبد قضایی افراد باشه استحکام استخونا ها میاره چون خود سیب و سرکه سیب سرشار از کلسیام حدود ده گرم کلسیام در ازاله ها و خون و اندام ها یافت میشه. کلسیوم همچنین برای بهبود عملکرد کرده و اعصاب و فعالیت قلب مفیده. افت کلسیام آریتمی قلب از زربان قلب را بیشتر میکنه. زریب شکستگی استخون ها مخصوصا استخون لگن و استخون سرشانه ها رو زریب شکستش رو بالا میوره و اینقدر این دو قسم استخون به قدری هم سخت جوش خوردنش با کچکترین حرکتی دوباره میشکنه گاهی شخص رو راه میره که میگه تق استخون لگنش میشکنه بخاطر اینکه تلاکم کلسیوم تو بدنش خیلی افت پیدا کرده از کجا بفهمی که کلسیوم خود دیگری کم شده، تا انگشتاتو؟ با نکش یکی یا دیگری فشار بده اگر دیر بالا بیاد کلسیوم بدنیت کنه اگر سریع بالا بیاد نه کلسیومت عادیه این آزمایش ساده برای اینکه متوجهشی که کلسیوم بدنیت یا کلسیوم دیگری کمه یا نه تو بحث طب تشخیصی یا طب بالینی حالا ما باعث خودم منبر کلسیوم در قضا بعضی ها میان استخون میجوشونم داخل خارج کشور مثلا میره استخون گستان یا استخون گاب شتون میخره بعد تو آب می بعد یه ماده شبیه لرزونک وجود میاد اینا رو جمع میکنه بعد هم تو فریز رو یخچالش میگهرمده. می هر وقت میخواد عس خودشون یا دیگه آن سوپ درست کنه از این ژله ها به همدل قاطتی این قضا میکنه میخوررم. این بدید ظاهری خوبه مقداری از کلسیوم و استخون محلول در آب شده. اما غذای مونده خوردن عمر کوتاه می کن، ذریب باکتری یا قارچ بالا میره. ذریب ویتامین تو غذا کم میشه. این ظاهرش یه کم کرسیوم مثلا می بینه یا میدونه بقیه چیزهاره نمی داره. که غذای مونده آممر و انسان کوتاه میکنه ذریب عفونت های باکتری های قارچی بالا می بره، کاهش افزایش کاهش ویتامین ها هست این اشتباه تکرار کنم متاسفانه متاسفانه توان متاسفانه نمیتوان جوشاندن و پختن استخوان را برای بالا بردن میزان کلسیوم کلسیوم عصاره گوش توصیه کرد با عنوان مثال استخوان قلم گاو در مجاورت هوا به راحتی آلوده میشود بحث آلودگی های باکتریایی و قارچی بعدم نگه اداری مونده این یخچال ها و فریزیر صفر مطلق نیست صفر نسبیه زیرا بعد از مدتی همین قضا هم فاسد میشه حتی اگر شما از کنم که درست شده هم نباشه. لذاب تو تخصصی تغذیه میگه نگهداری سبزی ها میوه تا چند ماه میتون نشست ها استرولیزه یخچال نگه. میوه چقدر این دارم گوشت چقدر؟ باز گوشت ها، گوشت قرمزه، گوشت سفیده، باز ماهی یا مرگه، اینا همه دونه دونه ها بیان شده تو تخصصی تغذیر و نگهداری مواد در سرد کننده. حتی بحث اعزار و جواره، تو بحث جرایی های باز و داخلی، اینجا مومن بحث اهداء عوض و نگهداری عوض. خب در نیتروژن مایع منهای های و بیست و درجه زیر سفر. یعنی باز تاریخ مصرف مشخص داره چون صفر مطلق نیست ما صفر مطلق نداریم نه تو زمین نه خارج از زمین مثل اینکه خلأ مطلق نداریم پس اینجا نگهداری مواد یک طول زمان خاصی داره گرنه از ارزش غذایی میافته و گای مسموم میشه از همه سریعتر شیر شیر خوردنی سپس جگر این حتی چند روز بیشتر حتی توی یخچال فریزر هم نباید نگه و بریزی دور چون دوچان مسمومیت ناشی از این دو میشه اینا وقتی مونده باشه بخوری اسهال استفراغ شدید میگیری گای منجر به اسهال خونی میشه پس اینها رو نباید نگه داشت مومنا بدن به ساده ترین شکل کلسیوم را از شیر یا فعواده های شیر میتونه بگیره ما اینها اینجا زدیم اینج مثلا قبل از غذا دو ساعت قبلش میتونیم ماست شیرین بخوریم قبل از خواب شب میتونیم ماست شیرین بخورید به همراه نعنا آویشان یا همراه با زنیان که تو روایاتش داریم و اینها بحث ساعتر با سین و صاد یعنی آویشان بحث نعنا عربی فارسیه که بحث هاوم نانخا هاوم عربی ه د نانخا عربی معرب اینان نه زنیان حالا اینجا تو روایات داریم اگر کسی ماست ازیتش میکنه به همراه هازون بخوره حالا اینجا یا دو ساعت قبل غذا میخوری یا شب قبل خواب به همراه آویشن و نعنا این ماست رو با خورج سبزی یا با اسفناج نمیخوری خالت به هم میزنه ناراتی های غیرازویه معده میاره این فرهنگ غلط تو مردم هست حواسشون هم نیست عوضش غذای اسفناج هم میاره پایین پس این ماست همون جور که دین گفته مؤمنا و آخرین دستای تخصصی و فوق تخصصی در دستگاه و گوارش حتی تو مقالات علمی آمریکا است کسایی که دلدردهای دائمی دارن و سرفه های خشک مکرر ناشی از حساسیت به پروتئین ماست اینجا شب نباید ماست و دوغ به تنهایی بخوره و یا در روز نباید زیاد بخوره همراه غذا نباید بخوره مخصوصا اون دوتایی که گفتم اگر نه بیشتر حساسیتش تشدیل میشه اللهم صل علیه محمد و حالی محمد و حالی محمد